نمیشین تو فدراٹری دروغه دروغه عملی میشه پنجرام که آن گرمیشون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن خیر الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آلالله لسی ما بقیت الله و الدائم على اعدائهم اعدائ الله الى يوم لخوی الله الهی هبلی کمال لنقطوع ایلیک و انر افسار قلوبنا بالضياء دیاء نظرها حتی تخرغم صور و قلوب حج و نور و تصله الى معدن العظامه و تصیره ارواخنه و معلغتن در عزق و محمد و هربیتی هی سلووت که علی و علی هم هجمعین مبالا ایام رو تسلطه از میکنم ایام ازنو سوک اهل بیت هست ایام آل آلالله هست و سونیان تشکر میکنم از همکاران عزیز مدیرت محترم مؤسسه معاونت محسز موسسه دیگر همکاران در محسس خاطر تدبیری که کردن و تلاشی که برای برپایی این دوره بسیار با ارزش به کار بستند و انشاءالله که مفید و مؤثر و پربرکت خواهد بود و از جمع شما که حاضرید در این دوره هم خیلی مبنم کنم هم تشکر می جمعه های و جمعه های که من تحت چه عنوانی مطلبی رو بحثی رو اینجا خدمت شما عرضه کنم من همین عنوان در واقع کلی این دوره رو عرض کردم شناسی. نظام ساز ولی با توجه به ظرفیت اصول فقه موجود <تصفيق> چون غالبا مطالبه ها این دو سه دهه اخیر یاد گرفتیم که فقط انتقاد کنیم فقط بگیم این فقه به درد نمیخوره این اصول به درد نمیخوره این حوزه به درد نمیخوره این برنامه ما به کار نمیاد منش اینجوری داریم فکر میکنیم به نظر من یک انحراف این نقد باید کرد مگر بدون نقد میشه چیزی اصلاح و ارتقا پیدا کنه اما نقد به این معنا نیست که همه جهات منفی و نقایس و نواقص رو بگیم نقد یعنی ارزش سنجی اینچه بگیم که این عیب این کاره و این هم هنالشه. هر دو رو باید بگیم حال حافظ، <تصفيق> ای جمله بگفتی هنرش نیز بگوی حال باید اشکالات و مشکلات رو بگیم مزایا و مواهب رو هم بگیم بعد راهکارها و راهبردها رو بگیم این میشه نقد، نقد باقی اینه نقد به منای منفی بافی نیست ولی اصف این رایت شده و تأثیرات منفی بسیاری هم داره رو فعالیت های حوضه میگذره کسانی مرتب جهات منفی و نقطه زعف رو که نقطه زعف نیست اگر بعضیش نقطه قوته گفته میشه نقطه زعف من در این جهت به دوستان آز کردم که من ظرفیت های اصول و فقه موجود برای فقه نظامساز صحبت می‌کنم. روین هم تمامل کرده بودم واقعش این است که وقتی فهرست دروسی رو که احساتی دعوت شدن ارائه کنن ملاحظه کردم دیدم یک خلاع اساسی این فهرست هست و اون این است که ما بناس روششناسی شناسی اجتهاد فقه نظام ساز رو ارائه کنیم اما اول نگفتیم فقه نظام ساز چی هست که میخوایم روش شناسی رو ارائه کنیم و این بحث بعد بحث اول می بود که ما اول بگیم فقه نظامساز چیست چه مختصاتی داره تفاوتش با فقه غیر نظام بر نظامساز کدومه وقت بعد بگیم حالا این چه روشه سیر لازم داره من اگر تب قسمت آخر رو هم اجبالا از خواهم کرد همون لازمتر و واجبتر از اون اصل مسئله اصل این موضوع مهبریه در حقیقت درست و بحثای این دور است ما یه جلسه داریم چندین سال هفتگی یه تشکیل میشه سابقا هفتگی بود تحت عنوان حلقه فقه نظامساز که ما چند سالی مطالبی رو آماده میکنیم اساتیدی در اون جلسه حاضرن مطلب رو قبلاً میمیسیم منورم در اختیارشون میگذاریم دوستانم ملازم میفرمون بعد بحث ارائه میکنیم دوستانم در نیمه دوم هر جلسه وارد بحث میشن یا نقد میکنن پیشنهادی میدن مطلب تکمیلی مطرح میکنن این روند چند سال است که ادامه داره و حتیان بیش از هزار صفحه از بحثایی که در این جلسات مطرح شده پیاده شده اونجا تو این چند ساله یه چارچوب کلانی رو برای فقه نظام ساز طراحی کردیم در مباحث و محبرهایی که راجب فقه نظام ساز باید ارائه بشود بحث بشود رو مشخص کردیم تقریبا غالب محبرها هم بحث شده اخیران بنابرای پیشنهاد زمان دکتر نایمیان اینجا رسیدیم که ما یه متن فشوردهی به اضافه این بحث تفصیلی که پیش آمده بود جلو رفتیم و رفت و برگشت هم داشته. ما یه متن فشرده‌ای که در قالب یک جلد اونچن گفته شده اگر تنظیم بشه ممکنه چهار تا 6 جلد بشه مثلا. ولی یه جلد فشرده، یه متن نگارش شده در واقع. از مجموعه مطالب اونچن گفته شده اگر مطالبی مونده گفته نشده اضافه کنیم، تهیه بر همین اساس من یه ساختاری رو کردم که الان رو ساختار کمانویش دارین تونجه از دار با هم بحث میکنم در این ساختار دوازده محور بناس بحث بشه من روی یکی دو محورش در این جلسه بخواهم توضیحاتی رو عرض بکنم که اون خلعی رو که عرض شد در مجموعه این سلسله درست و بحوس. باید دیده شد و خلق هست اون،, اون قسمت ها امدتن متمرکز خواهم بود در واقع ما یه محور به عنوان فصل اول فرض کردیم این بناس کتاب بشون بحثی که قبلا شده رو مکتوب شده و غالبا اینها رو فشرده شو بیاریم در قالب این ساختار قرار بدیم که آخه سر یه کتاب در بیاد به عنوان مثلا تعبیری فقال ندامیه یا فقال اندمه یا فقال تصمیح او تصمیم ال النظم یا اسمی به عربی احران میشه در واقع این فصول اون مجموعه است که مرور میکنم برای اینکه که یک زینیت فراگیری شما هزارات داشته باشید بعد برگردیم روی که دو مهور تبین بیشتری بکنی فصل اول در موادی تصوریه باید باشه که حال ما اصطلاحاتی کلماتی رو بکار میبریم باید اگر تلقی رایجی هست بگیم اگر نیست باید تعریف جدیدی ارائه کنیم تعریف رو نیم پسندیم باید تعریف مختار ارائه کنیم این یه فصل الفصل الاول المواد تصوریه لفقه الانده من تعریف المفردات و تراکیب المفتاحی و الكثير الاستعمال في یه مهربانه که ما به حال کلماتی داریم که اینو باید معنی شه، تعریف شه. بگیم فقه نظام یعنی چی؟ نظام مثلا یعنی چی؟ فرق نظام با پس کنید الگو چیه؟ فقه مثلا مضاف چیست؟ فقه موصوف چیست و رشته‌های مختلف همین فقه نظام کدومه؟ محور دوم های نظری فقه نظام فقه نظام ساس بعد از میکنم ما که در اینجا تکب داریم به ترکیب فقه نظام ساز به فارسی و نمیگه فقه نظام که بعضی دوستان میگن جهت داره که توضیح خواهم داد. الفراضیات نظریله ف اند من و منطلقات رو. اون پیشنگار فکر نظام ساز چیه که احیانا ممکنه با پیشنگاره های، فقه رایج متفاوت باشه یا اگر متفاوت هم نباشه احیانا پیشنگاره های فقه موجود بیان نشده ما که میخواییم مددهی هستیم یه ترهی نو میخواییم در اندازیم پیش فرض ها و مبانی و پیشنگاره های اون چه که میخواییم دنبال کنیم چیست این هم گفت میشه الفرادیات الندریه لفقه لاندمه و منطلقاته اون مناشی و شنگاره های این نوع اثر چیست خب ما اینو در قالب اصل سوم نظریه ابتنا که از چهار اصل تشکیل میشه مثلا اصل سوم اون مبانی که در مجموع فرایند انتقال پیام دین از سپهر الهی به ساحت انسانی طی می شود و اون ازلا و اون مراحل اون عباد در این انتقال پیام الهی رسالت به انسان دخیلند که شش محور میشن مبانی مرهود این شش محور از مبدع تعالی که پیام دهنده است تا انسان که پیام گیرنده است تا مقام تحقق که باید این پیام در عمل پیاده شد و الگوی عملی تولید و قبل از این هم ماده اون پیام واسطه اون پیام مثلا پیامبر مختصاتش و وسائلی که پیام به انسان باید منتقل شه این 5 6 به صلا محور خصوصیاتی دارند، اختزاعاتی دارند اون اختزاعات بذ لحاظ شه و تبدیل به قاعده فهم بشه و با اون قواعد فهم ما روانشناسی تولید کنیم و استنباط کنیم این خلاصی اون اصل در واقع دسته بندی این پیشنگارها باید بر این شش ش صورت صورتت الفرازیات الفرانزیات نظری ف اندم و منطلقات که مباده اوسط اون شش به ص دست عنااصل و مببد ها و مسئله نظریه طول حکم البته نظریه طول حب خودش جزون ماده دست اول مبدا این پیام رسالت بعد اینکه دین یا بخشی از این شریعت چیست؟ ماده اون ماده پیام ماده رسالت که در حوزه فقه میشه شریعت این میشه همون در قالب حکم که من حالا از دو سه روزه این دقدر رو پیدا کردم که نتایده کنیده کنیده مرمیان رو کنم دقدرم این شده که سال آینده احیانا این نظره طول حکم بحث کنیم برای همین رشت های یه دور در دور دوم اصول و من دو سالی راجع به نظریه ترون بحث کردم از مبحث اوامر که یه بحثی داریم اونجا به تقسیم الواجب از اونجا نقبی زدم و وارد نظریه الحکم، اون حکم چی اصلا؟ حکم شرعی چیه؟ ماهیتش چیست؟ اقسامش کدومه؟ کارکردش کدومه؟ یه بحثی اینجوری که الان مشغولم دارم تنظیم میکنم یه نوشتم اون زمان دارم سر می کنم و آمده کنم برای نشت اون دو جلدی میشه. در واقع فلسفه حکم به تعبیری که بخشی از فلسفه اصول و بخشی از فلسفه فقه بنیاد به دست ما می ده این هم یه که در خلال این محور باید بحث شد و بعد آرای که در این زمینه هست باید مدرسه بقرار می فصل سوم محور سومی که باید بحث ببینیم فقه نظامساز یا فقه چه نسبتی با سایر ازلاع دین داره؟ دین یه هندسی معرفتی داره از یک هندسهی برخوردار از دین محور بینشی داره که عددارش کلام یا هیاناً فلسطه اسلامی هر هستند. هستن و بخشی از ارفان عددار بیان این قسمت هستند. بخش معنویات داره و باعث مبرائی داره مبرائی ملکوتی و حیث معنوی و که حالا عمدتاً ارفان عهده داره بیانون هست حالا فارغ از این که چه مکتبی و چه گرایشی در ارفان اصلش فلجونه <تصفيق> بخش علم داره دین یه زل از هندسی محرفه دید. دین علم است. دین که مجموعی از گزاره های علمی رو در اختیار بشه هرها میده جنس علمند دانشن بخش اخلاق داره و بخش شریعت و سلوک قواعد و باید نمایات رفتاری این 5 هندسی معرفت دین رو تشکیل میدن. اینجا باید بحث کنیم که چه نسبتی بین فقه کنن و ما که با روی کرده فقه نظام ساز از نصف تولید کنیم <تصفح> چه نسبتی فقه نظام ساز با سایر از لواهن معرفتی دین داره. ما فقه رو بدون ملاحظه عقاید نمیتونیم تولید کنیم. اگر فقه فقه ماست. اگر فق اسلام فکری است بعد ببینیم کلام چه میگوید یا حالا دانش کلام میگیم منظور بینش باور من باور های در واقع دینی بعد ببینیم با اخلاق چه نسبتی داره جدایی از اخلاق که نمیشه فقر تولید کرد که مقداری ما گرفتاریم آفات هستیم البته باید ببینیم معنویات دین چه نسبتی با فقه داره نمیشود بدون ملاحظه معنویات دین فقه که سلوک ما رو تنظیم میکنه تولید شه در مجموع هر بخشی هر بخشی و خصوصا به نهایتا فقه الا و لا بد در پیوند با عقاید دینی در پیوند با ال دینی در پیوند با معنویات دینی در پیوند با اخلاق و تولید شد ما نمیتونیم در فق قضیه ای رو گذاره ای رو فرع فقیه رو تولید کنیم بدونیم که عوارز و لوازم اخلاقی رو ببینیم و بگیم فقه هست فقه است. بدونیم که پیوندش رو با اقاید ببینیم با معاد ببینیم با مبدع ببینیم اگر ربط او رو با مبدع و معاد با غایت دین نبینیم که خب میشم اون علم انسانی معمول دیگه چون که بعضی چون این بعضی از حوزالا مشاهیر در روزگار ما هستن که اینا میگن خب معاملات که عرفیه در نتیجه شاره در حوزه معاملات تشریح نداره این, یعنی چی؟ این از هم اول رابطه بخش معاملات که بخش مهم تشکیل فقر و ترتیب سبک زندگی مؤمنان است اینو از عقاید از مبدا، مهات جدا می‌کنیم. میگیم همون چکه اقلا میگن کدوم اقلا باید پیوند فقر رو با عقاید حفظ کنیم پیوند فقر و اخلاق حفظ کنیم فتوایی ندیم که میگیم درست احضر اخلاقی اخلاق شاید و نشایده این باید و نبایده این درسته در تبین ماهیت این دو دست قضیه درسته هر اما این به این معنی است که باید و نباید بوریده از و نشود از حسن و قب از تحسین و تقبیه و دیده شه نمیشه به نتشه این بحث هم یه بحث مهم میست که باید ببینیم نسبت فقه نظام ساز با سایر از لاحنسی محرفتی دین چیست مرسوبت که نسبت فقه الانضمه الى سائر از دائر الحندسط المعرفویت للدین به خاص الاصول القیمیه او القیمیه لفقه الانضمه و دور والاخلاق فی که اخلاق چه نرشی تو فقه داره باید ببینیم از دو جهت باید ببینیم یکی برای فهمید درست فقه شریعت دومی دو که ما نظام تولید کنیم نظام تکبودی نیست نظام با مجموعه از معلف میشه نظام اگه نظام تولید کنیم، باید همه ابعادعی دین رو ببینیم اگر نمیشه نظام فقیه نه نظام اسلامی نظام کل دین نمیشه نظام بخشی از دین ایراد ندارد نظام مزاف نظام برش خورده هم تولید کنیم اشکال ندارد باید بشه اما نباید بوری در سایر ابعاد اگر در پیونده با سایر ابعاد ما نظام تولید کردیم میشه نظام اسلامی و اللہ میشه نظام فقه اسلام کلام اسلام علم اسلام ایراد ندارم اما او نظام اون نظامی که مخاط زندگی رو اداره کنه در نمیاد ازش محور چهارم محبت تناسب وصله بین فقه الانظمه و بین سایر علوم نظریه دینیه نسبت علم فقه اینجا فقه شریعت در اون بالایی منظور فقه به معنای شریعت شریعت مستنبت در اینجا میخوام بگیم ایوه فقه ساد شد علم با سایر علوم نظری دین چه نسبتی داره فقه نظام‌سواد با فلسفه چه رابطه‌ای داره با دانش و فلسفه با کلام دانش کلام چه رابطه‌ای داره چون وقتی عقاید تبدیل میشه به یه دانش میشه علم کلام یک اقتضایی داره فلسفه میشه یک اقتضایی داره داده‌هایی داره با عرفان با سایر امور و همچنین با علوم جدیدی که داریم مطرح میکنیم امروز چه نسبتی با فلسفه اصول داره چه نسبتی با فلسفه فقه داره چه داد و شتدی با فلسفه فقه میکنه چه داد و شتدی با فلسفه اصول میکنه اینا رو ببینیم و این که ما از کجا همه تو روش شناسی که تولید میکنیم تاثیر داره ها و اینا رو نمیگم بعد به یه روش شناسی جدا از اینا بعد اینجور ببینیم بعد روش شناسی فقه نظام ساز رو تولید کنیم محور پنجم ما و تناسب وصله بین فقه العلمی و بین سایر علوم شرعیه اونا علوم نظری بودن فلسفه کلام عرفان اینجا این محور پنجم نسبت و رابطه فقه نظام ساز با دیگر علوم شرعی یعنی اون چه که حکم شرعیه حاوی حکم شرعی است به مسابع دانش الفقه خلق انو مسئله مطرحه تو دنیا در جهان اسلام روشان فکرای جهان عرب اهل سنت دارن مطرح میکنن گاهی بعضی روشن فکرای داخل شیعه هم مطرح میکنن ما پیشینی پروپیمونی داریم از تاریخ شیعه که داریم اوزان نوشتیم نه به این نام با این ادبیات که مقدس و شریع مثلا نه ولی به هر حال مطالعه میکنیم کتابی مستقل داریم فرض کنید ایلاعش شرایط نوشتیم. شرایط در واقع با تلقیه شیعه یا آن نوع بحث مقاصد دیگه با این بحثا با الفقه المقاصدی الفقه القواعد با قواعد فقهی چه نسبتی داره با الفقه الفروعی فقه موجود فقه فروعی موجود, فق موجود، به امسال اینا محور ششم ما هو بین فق و تناسب با صله بین فقه و علوم سلوکیه و علوم اجتماعی و انسانی چه نسبتی و چه رابطه‌ای فقه نظامساز با دانشگاه رفتاری داره با علوم اجتماعی داره با علوم انسانی داره مگر می شود امروز فقه نظامساز که بعد میگیم یعنی چی تولید بکنیم ولی نسبتش رو با علوم انسانی تعریف نکنیم داد و ستدش رو با علوم انسانی مشخص نکنیم مگه میشه فقه اقتصاد تولید کرد ولی علم اقتصاد رو کنار گذاشت نمیشه ممکن نیست اقل اقل نیاز فقه به علوم انسانی در فهم موضوع موضوعاتی که در فقه مطرح میشه و موضوع به تعبیر بعضی بزرگان همثال مرزای ناینی میشه علت حکم نقش لیدره. داره مگه میشه موضوع رو نفهمید حکم صادر کنید فقه حکم صادر میکنه بخشی از موزاتم موزات, موزات مختل و موزان تولید میکنه اما موزات علمی رو که فقه تولید نمیکنه موزات عرفی رو که فقه تولید نمیکنه فقه و فقی در موزات علمی و موزات عرفی م... م... ترجیح شونده است و محتاج به علم عرف و علوم انسانی بخشی از این نیاز رو مرتفع میکنه ولذا نسبت نظام نظامساز با علوم سلوکی و رفتاری، علوم اجتماعی، علوم انسانی باید مشخص به بحث شد. به و امروز فقیه، فقیه کماه و حقه، ما و شعنه نمیتواند بشود اگر ولو الجمله با علوم انسانی آشنا نباشه. اما فقیه اگر ندارد علوم انسانی چیست؟ چه شاخهایی داره؟ کلیات الاغلشت های مختلف رو ندونه و در حوزه معینی اگر کار اساسی میخواد انجام بده میخواد بیاد پس کنید که در حوزه معاملات فقل اقتصاد بگه اقتصاد ندونه چیست اون نمیتونی چیزی بگه اون چه میگوید دقیق در نخواهد اومد حتما به خطا میره محور بعدی موضوع فقل انده و نصاحته موضوع فقه نظامساز و قلم رو با آن فقه نظامساز موضوعش چیست آیا فقه نظامساز مثلا مثل فقه رایج بگیم آقا موضوع فقه چیه افعال مکلفین مونتا عملن آنگونست که وقتی افعال مکلفین یعنی افعال افراد مکلف معمولا اینطوره یه نوع انصلافی انگار به وجود اومد نمیخوام بگم لزومن ولی تقریباً یه چیزی در حدود انصراف تا بگید مکلفین یعنی من من حسن حسین تا قینافی ما اینجور اینجوری به ذهن میرسه وقتی می مکلفین هیچ وقت به ذهن کسی ممکنه خطور نکنه که یعنی مثلا طبقه حاکمه طبقه حاکمی یک مکلف اجتماعی است این یک موضوع افعال او, او مثلا لو فلان طبقه فلان قشر اجتماعی چیه؟ کل جامعه فقه اجتماعی فقه و اجتماع جامعه جامعه چه تکالیفی داره جامعه به ماهیت جامعه مجتمع به ماهو و مجتمع از اون جهت که مجتمع است فارغ از اختلافات که در خصوص ماهیت جامعه هست ولی فل جمله نمیشه کلا نادیده گرفت که به هر حال جامعه اختیزااتی داره،, داره یه هویتی داره این اگر کسی این جهت رو توجه نکنه سادنگاری میکنه دقیق نیست ولی حتی بعضی از اعاظم احيانن بعضی مطالب رو راجع به ماهیت جامعه فرمودن ولی دقیقتی است اگر افراد تفرید در تلقی از ماهیت جامعه است ولی فل جمله ما میگیم فل جمله جامعه هویتی داره هوهویتی دارد یه خارجی دارد یه واقعی دارد خب این به مسائل مکلف تلقی میشه افعال جامعه مکلفین یعنی یه هم انسانها از اون جهت که عنصری از عناصر تشکیل دنده جامعا یا کلان این هویت به مسابه یک واقعیت خارجی این در واقع موضوع مناسبات روابط فقه نظام ساز اصلا میخواد مناسبات رو درست کنه میخواد روابط رو مدیریت کنه این یعنی موضوع محور بعدی الفصل الثامن مسائل فقه الاندمه الاساس مسائل اساسی و بنیادین فقه نظام چیست فقه نظام ساز چیست که الفقه و تاسع بنیویت فقه الاندمه و خندسد و سوریه ساختار فقه نظام ساز آیا همین که الان داریم این چهار بخشی که از شرایع از محقه ما بررسی بردیم از شرایع دون چند سال همین خوبه همین ساختار که باید میکنه یا نا ساختار ساختاری دیگری لازم داریم. هندسه فقه تغییر کنه. این اختزاعته اگر بگیم فقه نظام سازه است به این ترزی الان ما فقه رو بندی در... و دسترندی کردیم در این جاربخش این ممکن پاسخگو نباشه. و معلوم نیست. ما بیاییم چون که تا این چند سال دیدیم که مثلا اقود یه اشکال خیلی دقیقی مرحوم شاید متقری فرموده که وقت بعد میگیم عقود ایقا بعد هم میاریم توی عقود تلاق بریم توی ایقا یعنی دو روی سکن چطور مند. چه این طبقه بندی است که ما این دو تا مطلب در پیونده با هم که اون فسخ اون عقده اینو توی فسخ دیگه واسه می‌کنیم خب از این نوع اشکالات ممکنه وارد بشه اون جلساتی که از کردم ما جلساتون اعتمادی و ممتدی رو راجب نقد ساختار کنونی فق داشتیم فل جمله ساختاری پیشنهاد شد حال ساختار خیلی مهمه که ما فق رو امروز چگونه باید سازمان کنیم که فق نظامساز در بیاد از توش محور بعدی قاید فق الاندمه به معطیاتو دستاوردهای فق نظامساز چیست؟ فق موجود چه؟ دستاوردهایی داره چه؟ چه چیزی در اختیار بشر قرار میده مشکلات شد چه مسائل روش حل میکنه چه چگونه حل میکنه؟ و فقط نظام سال چگونه و محور گازدهم الخواویت و معرفبه یاله فندهمه فقه اندمه در جغرافی های معرفت چه جایگاهی داره؟ پیشینش احیانا این چگونه؟ چه پیشین داره؟ و اینجور این سنخ بحثات رو ما تعبیر می‌کنیم به هویت معرفتی هویت معرفتی در واقع فقه نظام ساز چیست و در حوز محور مسادر فقه لاندمه و منحجیت العامه و اصالی الدراستیه فی مسائله به خاص معطیات علم الاصول العتید فی. در حوز زمین آخرین محور مسئله رو بشناسیه مسادر و منابع فقه نظامساز دستگاه روشکانی عام و کلی فقه نظامساز و اسلوب هایی که در متن فقه نظامساز بر حل مسئله به کار گرفتی می شود این مجموعه می شود همون روشناسی فقه نظامساز که در موضوع این مثلا دور است ببینید ما یه تصویری از فقه نظامساز باید داشته باشیم که چه ارسودین دوازه می اون تصویر است اما یه مدار خورتر بخواییم بحث کنیم در حدی که در حصه زمان اجازه بده خب گفتیم اول موادی تصوریه خب فقه میدونید تعریف داره و هم آشنا هستید تعریف لغوی داره اصطلاحی داره در عدوار مختلف تعریف مختلفی راجع به فقه گفته شده اونا دیگه جایی طرح نداره اطلاف وقت برای شما یک تلقی که ما از فقه فقهی که باید باشد اون الان باید فقه بشود که میشود اگر بشود میشه اون نظام ساز. چون اگر فقه نظامساز نشد فقه امروز نیست ما نظام میخواهم اداره کنیم نظام تولید کنیم خودش باید نظاممند باشه اینجا در واقع فقه اونجور تعریف میکنیم نظامون سلوکیون شرعیون شامل کلان نظام فراگیر شامل نظام سلوکی شرعی شامل نظام رفتاری شرعی کلان نستمبت من مسادر تشریع اسلامی به استخدام من حجل معتبر تنظیمن لشعون حیات الانسان المختلف هم تنظیم قایتش تنظیم شعون زیستی انسان در همی عرصه ها من حیث و تکالیف و الحقوق ولوضعیات سه دسته ما فرع داریم گزاره فقی داریم فق به احکام تکلیفیه و حقوقی تقسیم فقط نمی شود به بخشید حقوقی هم هست اینو مقفول می تاریم. این مجموعه باید در یک ساختار چهار بخشی تنظیم شد که بر اساس در واقع رویت منصوب از ساده السلام به چهار قسم روابط رو تقسیم میکنم اساس اصلاس ممگی موید سازماندی بیشه فقط تنسهب تحته اربعت نظم سلوکی اصلیه تعلق به اصول معاملات انسان و علاقاته و هی که تالی الول ما یتعلق به نتاغ مع... معاملات الله رابطه انسان به خدا و الثانی ما یتعلق به نتاغ معاملات نفس رابطه انسان به خودش و ثالث ما یتعلق به نتاغ معاملات الخلق حسب هقلیه رئیسین حق از شعون, شعون الانسان و حق شون ماسل الانسان محور سوم اون چه به نتاق و قلم رو و ساحت معامل و تعامل با خلق مربوط می شود که اینو ما به زهمیت جایگاه انسان به دو بخش کلان و رئیسی تقسیم میکنیم یکی رابطه با انسان یعنی انسانها یکی رابطه با غیر انسان ماسل انسان با همه به صلاح سایی موجودات. و رابع ما یه به نتاق معاملت دنیا و العشرت دنیاگیه محور شهارم اون که مربوط میشه به قلم رو و با دنیا دنیا در مقابل اقبا منظوره نه دنیا در مقابل ملت و غیر ملت مثلا فرامرز. این روایت قضرت منظوریشونی که بعضی من دیدم خب تصابر کردم معامل دنیا نهی مثلا آوتو بیمهر بعضی از مشاهیر و دوستان فاضلی که تو این زمینه کار کرده من دیدن. اینجوری فهمیدم ولی درست نیست ما یا تعلق به نتاق معاملت دنیا و العاشرت دنیاوی زندگی دنیایی این سه چار مهبر این آجاب فقه فقه مطلوب تعریفه فقه مطلوب یا تعریف مطلوب فقه این اما فقه نظامسات چیه تعریفش؟ ما اصطلاحات مختلفی است که باید معنی کنیم. قبل اینکه فقط نظام ساز بگیم نظام رو باید بگیم چیز. مفهومیت نظام مفهوم شناسی نظام. تعریف ما اینه. ما یفعله من معلفات مختلفه, متناسقه و متفاعله. یمتلک تمیزن به نسبه الى انظمت الاخره و یستحتفت تحقیق، آیا، مقصود این عناصر تعریفه یک نظام چیه؟ نظام ما یا نظام مرکبه نظام بسیط نیست نظام از معلف ها و مکبنه های مختلف تشکیل می و بایلا یه امر بسیط بلا جز بدون فاقد جز نمیشه نظام نظام مرکبه است. ما یه من مؤلفات که سه وجه داره های نظام اولا مختلفه باید باشه یعنی این نظام همه از یک جنس باز نظام نمیشه مختلفه متناسقه در حال در اینکه مختلفه متناسب و همسازند سازگاران با هم دیگه سه و متفاعلا اینا باید با هم تفاول کنن تعامل کنن در یه یک تفاول یک حرکت ایجاد میکنن نظام خاصیتش اینه که یمتلک تمییزن به نسبا علال اندامت رو خورا. که یک تمایز و تفاوتهای رو با دیگر نظام ها موجب میشه چون نظام هر نظام با نظام دیگر ما باید مرزی دارد میزی دارد بین این نظام و نظام های در عرضش یا نظام های در طولش نظام های کلانتر نظام های خورتر چون هر نظامی هم با نظام های دیگری هم عرضه هم از نظام های دیگر احیانا فراتره پس خرد نظام داره و هم نسبت بعضی نظام ها فروتره یعنی نظام کلانتره که شامل این نظام هم می شدن یعنی طولن و ارزان نظامات در واقع یه نسبتی با هم پیدا میکنن هر نظامی باید ارزن و طولن از در دیگر نظام جدا شه لحاظه ها میگه نگم تلک تمییزن به نسبه الانزمت الاخرام حالا انزمه یخرای ارزی فرض کنید نظام اقتصادی با نظام مثلا فرض کنید مدیریت مثلا یا در از همه یا نظام تولی نظام فرض کنید که کلامی در دین مشربه بر نظام فقیست نظام فقی منشعب از و متاثر از نظام کلامی است فهم نظام بینشی حاکمه اون قهرن فراتر ویا ساحت تحقق تحقیق تحقق مقصوده من که جهادگیر جهت داره، هدفدار هدف گرفته از محقق شدن یک رو که از یک نظام انتظار داریم ما از هر نظام یک رو مطالبه می کنیم نظام برای اینکه یک هدفی رو محقق کنه یا سهدف تحقیق تحقق غایه مقصودم این به صورت تعریف نظام یه چیز دیگه هم داریم اونم عرض کنیم برگردیم اینه مگر توضیح بیشتری لازمه یا شما سوال بفرمید به مکاتی را از کنم حسب تشخیص شما و اون که ما یک نظام داریم یک الگو داریم این دو نمت با هم خلچه نظام و الگو از تاوت که الگو در واقع یه برش از نظام که ثابتات نظام درش هست متغیراتی به اقتضاع ظروف زمان، مکان، فرهنگ، شرایط اجتماعی، تاریخی، حتی اقلیمی موثرا در مقام اجرا یعنی نظام شما میخواد اجرا کنید، نمیتونید اوریان بیارید اجرا کنید اقتضاعاتی هست در ظروف زمانی، مکانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، اصری که اینا تأثیر میذارن بر در مقام تحقق و اون چه که ثابتات نظام رو میارید، پیوند میزنید با اقتضاعات به تعبیر ما ازمکانیه اون عناصر و به متقلبات از زمکانی اون اقتضاعات زمانی مکانی پیوند که میزنید الگو اجرای درست میشه جمهوری اسلامی درست میشه جمهوری اسلامی به تعبیری نظام نیست الگوه یعنی میشود حکومت اسلامی رو با حفظ ثابتاتش اینکه مثلا مردم سالار است، ولیذا آقا تعبیر فرمودن به مردم سالاری دینی هم تو جمور اسلامی.مالتو اصلاح اورف میگم نظام جمور اسلامی و درقع بگم نظام مردم سالاری دینی که یه ارگ جمور اسلامیه. حالا در این جمور اسلامی که تو هم نسی نوشتیم گفتیم مثلا سه قوه بعد داشته باشیم. حالا اگر گفتیم ده قوه داشته باشیم غیر اسلامی نمیشه. یه روزی اقضاء کرد به جای سه قوه ده قوه داشته باشیم. با هم اسلامیه. چون تفکی قوه جز جوهر حکومت دینی نیست. که اگه تفقیق قونا نشود اسلامی نباشه پیامبر تفقیق قونا فرموده بودن حکومتشون اسلامی نبود اسلامی بود بعضی عناصر اختزاعات مقام تحقق اینا رو که اضافه میکنیم الگو تولید میشه الگو بسته به زمان و مکان تغییر میکنه ولی نظام هرگز تغییر نمیکنه ولی نظام دو صفت داره واحد و ثابته در نتیجه نظام فقط باز از متن شر، شریعت استنباط شه چیزی نمیشه اضافه کرد اما الگو واحد نیست بسته به شرایط چند جور الگو میشه ارائه کرد. ثابت نیست میتونه تغییر کنه. زمانی این زمانی اونجور بهتره. ولی سابت ها سرزیش باید باشه. به نتشه میتونیم الگو های از حکومت اسلامی ارائه کنیم در شرایط و مختلف. گوناگون متنوع و متغییر. هیچ مشکلی نداره. اگر اون ثابتات حفظ شد، در واقع اسلامیت حفظ میشه و اون مقامی اجرا که ارتباطی و اسلامیت یعنی ارتباط نهی که بی ارتباطی میخوام بگم جزو شروط اسلامیت جوز شطور اسلامیت نیست شطر جوز اسلامیت نیست ممکنه البته جهاتیش بعضیش جزو شروط باشه آنگونه عمل کنیم مقام عملگاهی جزو شروطه رایت باید بکنیم جهات رو مثلا فرض فرمیم در چه یه چیزی پیدا میکنی به نون الگو یا به تعبیری ما میگیم الگار او الانموزج و تطبیقی این الگو چیه مثالون نمونه است مثالون تنعکس فیه الندریه او الندام فی زو ملاحظت متقتلبات از ظروب زمکانیه و الثقافیه و لبادم المختزیت الاخرى من تقنیات و آلیات تناسب مقام الاجراء و تطبیق الگو چیه؟ الگو عبارت از اون نمونه ایست چه؟ یه نظریه الگو از یه نظریه یا الگو از یه نظام هم نظریه است به الگو میشه کرد هم نظام بود الگو از یک نظریه الگو از یک نظام درش منعکس است یعنی هست این ثابتات نظریه ثابتات نظام هست منعکس درش ولی در پرتو و در آینه واقعیت خارجی فیزو ملاحظت متطلبات از ظروف در, در نظر داشت و ملاحظه کردن متطلبات و اختزاعات ظروف زمکانی از ظروف زمکانی زمان مکان و ثقافیه ظروف ثقافی و فرهنگی بل لباد ملمختزیت الاخرا سایر لوازمی که اختزاع میکنه چی اختزاع میکنه؟ مثلا تقنیات تکنیک ها به اصطلاح ابزارها و آلیات آلیات تناسب مقامل اجرا و تطبیق روش ها تکنیک ها ابزارها شیوه هایی که مقام اجرا و تق... تطبیق می میکنند شما امروز میگی مثلا فرض کنی بانکداری یه روزی اصطلاح دیگه میاد یه روزی میگید پول یه روزی میگید رمز ارز اینا دیگه تغییر میکنه ولی بعد اینا همه خورند اون ثابتات باشند درسته که در متن شریعت حجواج رمز رو شد و و رو رو رو رم عرض، رمز شده و آیا رو یاد پیدا نمیکنید اما بعد ببینید این رمز رمز با توجه به ثابتات شریعت خورند شریعت هست یا نیست درچه هر ابزاری هر تکنیکی هر روشی اسلامی نمیتونه بشه نمیتون در نظام اسلامی به کار بگیرید. بعد برید روش ها تکنیک ها ابزارها کیواهای رو شناسایی کنید که خورنده فراخوره ثابتات نظام اسلامی هست به درد اون نظام بخوره تا بتون تو الگونو بگنجونید به این ترتیب یک مفهوم دیگری پیدا می‌کنیم به عنوان نظام به عنوان الگو یک اصطلاح یا مونده اصل خود فقه نظام ساز رو تعریف کنیم فقه نظامی گای می‌گیم ما تعبیر عربی معادل این اصطلاح نظام ساز نداره ما این مشکلی داشتیم تر ترکیب ترکیبش ساختیم یکی فقه نظامی است ممکنه کسی ایراد کنی یعنی چی فقه مضافه بنید چون ایراد داریم به فقه نظام فقه نظام اشکالاتی داره <تصفح> وقتی میگه فقه نظام یعنی فقه رژیم پس بقیه چی میشه یا فقه نظام یه یعنی فقه بیشتر بزن به میاد فقه نظام سیاسی یا فقه نظام مستقر ما میگیم فقه نظام ساز چرا چون از ترکیب فقه نظام ساز ما سه تا چیز میفهمیم که از ترکیب فقه نظام اونو نمیفهمیم یعنی چه برای معادل عربیش گاهی میگیم فقه نظامیه، فقه دارای نظام این هلتا جعل اصطلاحه مثل مثل مفهومیت فلان کلمه مثلا مفهومیت نظام گفتیم، مفهومیت نظام به به طبق قاعده رایج به معنی مفهوم شناسی احیانا ممکن نباشه مثلا ولی در ساخت عربی محاصر میگن معرفیه، مثلا معرفیه، نظام... هست مفهومیه مفهوم شناسی غیر از مفهوم وقتی میگیم مفهومیاتون نظام یعنی مفهوم شناسی نظام وقتی میگید مفهوم و نظام یعنی مفهوم نظام یعنی از مفهومیات این تا این چیزی که اضافه میشه در واقع شناسی رو عربا میفهمند در عربی معاصر بین اعتبار ما میگیم فقه و نظامیه یه استنا یکی از دوستان ما جوزمون حلقه فقه نظام ساس از عرب هست استاد محترم دکتر قفوری اشون ترجمه تعبیر فارسی ما رو اکینا ساخته ما میگیم فقه نظام ساز ما را میگفتیم فق و تصمیم عن نظام اشون به ادبیات عربی محصر میگن فق و تصمیم, النظام. تصمیم النظام. یعنی فقه نظام تصمیم نظام یعنی فکر نظام فقی نظام میسازد فق تصمیم نظام اشون تعبیر میکنه و خوب هم هست فق و تصمیم عن نظام هم اشکال نداره. یا فق صناعت نظام هم ایرادی نداره این هم ترجمه فقه نظام ساس هست اشکال این ترکیب این است که کلمه اضافی داره من بکار نین دارم اشکالش این است که در واقع بلخواه اسم هرچی کوتاهتر بهتر ولیزا خود من اخیراً بیشتر یا از همون فقه نظامی سابقا استفاده کردم بیشتر مایلن بگم فقه الاند من فقه نظامات فقه نظام ها فقه نظامات و شاید جامعه تره بعد گفتیم لا نعنی به فقه نظامیه. فقه متهندسن و دا نظم معین فحص منظور ما از فقه نظام ساز فقه دارای هندسه نیست یا فقهی که دارای نظم است فقط یه نظم معینی داره نه فراتر از این رو ما میخواییم برای اینکه فقه موجود هندسه داره چهار بخش داره تقسیمات داره داره فقه هندسه داره ما نمیخوایم فقط هندسه ازش بفهمیم پراتر از هندسه. نظام فراتر از هندسه است. هندسه فقط ازلاو نشون میده. احیانا. بخش ها رو نشون میده. اما هرگز حکایت از معلفه ها نمی کنه مثلا. حکایت غایت نمی کنیم. مختصات نظام و فقه متهندس دارای هندسه مختصات نظام رو نداره. تمام چیز تو تعریف نظام گفتیم اینا رو فاقد نیست. همه رو فا... واجد نیست. بازی رو فاقده. نهانی به فقه نظامیه فقه هم متحندسن و دا نظم معیل فهست فا این نوع اندازن یست و قدر الفقه ازا امتلک بنیو و تنسازجتن احیانا یو ساختر سادم دشتوش اندسه داره این میشه فقه متحندس ما فقه متحندس نمیخوان فقه نظامساز فقه نظامیه میخوایم دون ان یمتلک معاییر ان نظام تماما بدون اینکه همه معیارین نظام داشته باشه میتونه متندس باشه اما از نظام نیست یعنی ام خاص مطلق نسبت به این فقه نظام ساز و فقه متندس کما هو حال الفقه العتید الموجود حالیا فقه موجود اینه هندسه در ساختار داره, داره. این چیزیه که بگیم فشل پراکنده است كما على الرغم من ان الاتجاه النظامي في الفقه بل قول ما في النظام بعد ذهن بیشتر معادله قرار میكنی فقه نظامي في نه از نظام است بعد بعد یکی كما من ان النظامي الفق، قول بنظاميه الفقه يستلزم فقط وقتی نظام ساز شد بله فقه حکومتی هم جزشه فاینفقه از الشمولی چون گمشامله یا تجه الى عامه و جمعمت تطبیق شریعه چرا که فقه شامل که هم فقه نظام ساز است او به عمومی سازی و اجتماعی سازی می اندیشه. بله عمومی کنه فقه رو فراگیر میکنه اجتماعی میکنه درسته ولی فقط اجتماعی شدن عمومی شدن لازمش، این اینه که نظام ساز شده باشه از شرایطشه و تطبیقه ها از شعون الحیوی و امن اهم ها و از شعون سیاسی مهمش شون سیاسی درسته ولی اجتمال بر شون سیاسی فقط کافی نیست بگیم نظام ساز است چون که بعضی میگن فقیق ما نظام, نظام دار نیست اما میگن من حکومت میکنیم بله ما تمام کنیم شما خیلی بیش از این خسته نشدیم از خلاف للفقه بله این بس باید سحتب الى ارجاع معالجتها للحلول الفقهی علا نهول ندامیت تماماً فقه نظامساز اینجوریه خلاف للفقه لا نظامی التجزیعی فقه فاقد نظام فقه تجزیعی و متناسر پراکنده غیر متمرکز غیر کلامبین غیر شامل غیر فراگیر فان ذلك اتجه الى شخصه شخصاست الشؤون دینیه شخصسازی میکنه فردینگره نگری فردانیت جوهرشه اما جمعانیت اونجا جوهر فقه نظام سازه نمیتواند نظام تولید کنه اقتصاد رو فردی ببینه نمیشه اقتصاد فردی که نظام از روش در نمی یعنی نمتونی نظام اداره کنه میشود یه نظامی تعریف کرد به اقتصاد فردی توی یک جزیره یا یعنی نفر زندگی کنه ولو رو بیشینه و قش کنه و زندگی خاله و زندگی کنه. میشه ولی نظام از توش نظام که ما میگیم از توش در نمیاد. شخص هست از شعون الدینی فی مختلف از ساحات و فردنتها و یمیل و اله ارجا محال ازت الاجتماعی و الحکومه به حلول عرفیه که این خصوصیت فقه فردگراست که ناچار بر از عرف بیشتر مدتر بگیره ارزش عرفی، نظام های عرفی، مشکلی که بیشتر فقه ما اکنون بهش گرفتار هست. در عرفی سازی شعون، عرفات از شعونی و جعله ها عرفی خب، خصوصیت فقه نظام ساز است تعریف از فقه نظام ساز در واقع فقه الانزمن میشه نظام، سلوکی، شامل، شرعی، بین القبایشتن یا بین دو قلاب بگیم مشتمل علا نظم سلوکی فقهی فرعی مختلفه. یستنبت من مصادر التشریع الاسلامی با استفاده منهج معتبر و مناسب تنزیما لشؤون حیات الانسان المختلفه بالكامل من حيث الحقوق والواجبات والمس یات سه تو ویژگی داره فقه نظام ساز این ترکیب فقه نظام ساز اختزا داره ما به جای فقه نظام اینو به کار می‌دیم. خصوصسه خصوصیات در بر عبارت دیگر فقل ذو ميه او فقل اندما یمتلک سلاس خصائص او خصال سلاس خصال خس... اساس من الجهه از اینجا جهث سه تا خصلت داره سه وجودی داره یک الاول ان و نظام به نفسه. وقتی نظام سازه است لازمه‌اش خود نظام دار باشه خودش نظام داشته باشه و اینه نظام تولید کنه فاقدشه شی معطی شی بشه پس اول از ملازمه استفاده میکنه پس خود دارای نظام است پس فکر نظام با همین گفتن فکر نظام ساز نظام هم گفتیم عملا میشه نمیشه ود نظام ساز بشه بین نظام یه امر نظام نمیتونه نظام تولید کنه که الاولا النهوض و نظام به نفسه خودش نظام داره دو و ثانیا انه یسع ان یسنا فرعی مختلفه قادر است شماری نظام های فرعی تولید کنه حسب حاجات تلموکلفین معیار تعداد نظام ها استقرایی بگیم این پنجتاست و تمام این دهتاست این چهلتاست تمام نه چرا برای اینکه که تولید نظام ما از متن شریعت میگیریم و میاییم در میدان برای چه نیاز داریم نظام تولید میکنیم براساس شریعت انهو یست عن ان یست من انزم فرحی مختلف حسب حاجات حسب حاجات المکلفی من حیث الحقوب والواجهات و غزیات فی اقار مساحات شعون حیابیه در ساعت به میدان مجاال های به سلام اون انسان سوم هم اینه و ثالت هم اننا یک دور تمشیت تلکم اندمه و تبیر ها خودش نظام هم اداره میکنه نظام دارد نظام من داشت نظام تولید می کند و نظام را اداره میکنن یعنی کار نظرین نمیکنه و خیلی ملکوتی رو تاخشه بذاره و بلکه چیز کار میکنه میاد اولگو هم تولید میکنه چون برای اداره اولگو نیاز داریم گفتیم نمیشه نظام رو اوریان بیاریم بزنید وسط میدان کاربردی نیست بعد ما ملاحظات در وقت اختزاعات میدان رو عمل و خارجی رو اینا رو ببینیم تا ببینیم میشه اولگو از اون نظام نه خود نظام چون اضافه میکنیم چیزایی رو چیزایی که خورند نظام هست. در نتیجه سومین ویژگی فکر نظام ساز که الگوی اجرایی میتونه تولید کنه مثل ما امام امامیان فرمودن قوننسه رو تایید می هیچ چیزی خلافش فکر درش نیست یعنی این قوننسه سیه الگوی بود از نظام اسلامی امام تایید فرمودن یعنی گفتن این الگو درسته این منطبق بر شریعت است با این کارام میکنه انه یقدر الا تمشيه تلک وعندما و تدبیرها بالکامل یعنی یسع ان یسن ان نمازج ات وفق متطلبات از ظروف و زمکانیه و ملاحبت اختزاعت الاجرافی الواقع تو میدان واقع باید چه چیزایی گیروگورای مقام اجرا خیلی مهمتر از استعمال خود فقه حتی کسی بتونه راحل پیدا کنه آقا ما امروز به بانک نیاز داریم ولی اساس بانک بر معاملت ربعویست است چکارش کنیم هنر فقی اینه که ها موضعل بانک اینجوری میشه بر اساس فقه و شریعت حل کرد یعنی چی یعنی بانک الگوی اسلامی بانکو میتونه ارائه کنه کاری که صورت اولیه‌ش رو ششصد انجام داد بانک لورا بوی تا از اندونزی یا بالیجو من یادم رفت درخواست کردن از شایعه سنی بودن از شیعه خواستن از فقیه شی که شما یه الگوی نظام بانکی وا بهشون و جون کار کرد کتابو نوشت سری من شدم که من وقتی شنیدن تعجب کردم گفتن هر روز یه هفته نوشت ما 40 شش ماه نبود روز یعنی ظرف 40 روز این مرد بزرگ رسول الله تعالی یه نفر نشست تو نجف که کسی تو این عباب درگیر نبود اصلا اقتصاد یعنی چی شاگردان اولی که اومده بودن ایران یک بگم تموم شهرساز می گفتن که فلون کسک از بزرگان ایدالوگ های اقتصاد سوسیالیستی دنیا یادم رفته از ما از مشاهیر مارکسیس می زمان کتاب اقتصادی های 600 رو دیده بود خیلی تحجم کرد گوتو بود با برم ببینیم کجا آقا گفتن ایراقه ایراق زندگی بکنه مثلا فرض کنید گویی گفته باشه ما خیال که اروپا زندگی می کنید میاد در آقا کجا شهر میگن نجف نجف کجاست مگن یم چهری بیاد نجف او شاگردش نقم کرد که هنوزم هم هستشون بعد دشته تو میرفت میرفته آدرس خونه شایصد رو یه هم میگن اونا شایصد اه یه آخوند اومر خیلی من راه میره یعنی این که که یعنی یه آدم اینجوری این طور فکر میکنه فی این فقیه اینو ما میخواییم فکر نظامسازی که میگیم بعد فقیه بشه فقیه فقیه, فقیه یعنی چهی بشه اولگوش دنبال این ایمان. که بتونه برای بانکم که ما نتونستیم من بگم هنوز جمهوری اسلامی نتونسته چلو سه سال از اقلاق گذشته ما یه قانون بانکداری بدون بهره یه الله رزوانی رزوان عز و بوده چند اقتصاددان برجسته مثل دکتر توتونچیان و که آدم های اقتصاددان برجسته آی اینا آئینمازی و میشینن هنرشون میشکین قانون باطامی دون رو مینمیسه فعلا با بیشتر اصول عملیه و اختیارات حکومتی و به اصطلاح احکام حکومتی یه جوری درستش کنن که ربا به نوی حث از نظام با فعلا جور که یادمه دو یا پنج سالم بود این قانون که بعدا برکه نظام بانکه تولید کنیم نشد برلان امالو چند سال است درگیرن که الان مفصلی شد و خدا بیموزاقای موسویان ما رو که از باننا تعلاله که مقارن سالگرد رلت این حضور هستیم که خیلی متاثریم. یعنی بین طلبایی یکی پیدا شد راه شعیصد رو دنبال کنه وسیع تر. و اونم متاسفانه در کرونا از دست رفت 19 هم روز رهلتیشون فردا مراسم دارم دوستان مدت تهران حال فقه نظامساز یعنی فقه که دارای این سه خسلته دنبال اینی این. بخواه روش شناسی چون این فقه موضوع این دوره است من یعنی فرصت شما هم شما هستی شدیدم دیدم هوام گرمه خیلی پوزش خواهم از اینکه دو این گرما تعمل فرمیدید و عرایز ناقص و نرسلنده رو استماع فرمیدید کاش که فرصت میشد بند اون الگوی رو که راجب برشناسیه چون این فقهی هست رو هم مجالی بود توضیح مدادم که خودش جلسه اختزام میکنه که نه شما مجالشو دارید نه من توفیری شدارم خوب خدمت شما هستیم و سلام علیکم و رحمت الله, الله شون وقت کم جلسات بعدی که شوراست سوالام زیادو انشالله این سوال رو یه سری خدمت شما میگیرمون البته در تخت دپایندی رو فرمودن یا اگه بشه اینا رو پاسو کنیم ساختاری از فێرای دادید را تفاوتش با ساختار شهید صد چیه؟ فرضت که شهید صد یک اشکالی که بر ساختار پیشنهادی شون وارد بعدان آقای هاشمی رضوان تعالی اون رو تقریبا تکمیل کرد به رغم این این اشکال لاقل حداقل این اشکال رفت نشده و وجود داره با اون اینی که نگاه کلان نداره به فقه در چه به نوع یک تقسیم کلان اول کرده به صناعی بعد ساختار پیشنهاد داده اجمالا اون که ما داریم پیشنهاد میکنیم فرض ما بر این است که مب... فقه مبتنی برای روابط اگر میگیم نظام چون تلاش مناسبات و روابط رو مدیریت کنه و تقسیم مبتنی بر روابط باشه. و سنخه روابط، حالا سنخه روابط یک بار بر اساس طرف رابطه است. مثلا مبدع تعالی نفس خود انسان، مثلا خلق و مثلا دنیا. اون طرف رابطه. یک جهتم موضوعاته. اون ساحات رابطه است. یا چه ساعت اقتصاد، ساعت سیاست، ساعت اخلاق، ساعت چه ساعتی؟ ساعت اخلاق، ساعت مدیریت. باید اینجور تنظیم کنیم. اون که ما تنظیم کردیم، پیشنهاد کردیم در واقع ملهم از یک خبر معروف منسوب از ساده علی السلام. این خوب بودش امتیاز حاصل خوبه که ما ببین اصول المعاملات الا تقعنا اربعه حضرت فرمودند. معاملات الله، معاملات النفس، معاملات الخمره، معاملات دنیا. و بعد اونچه که مرمو 600 فرموده البته که پنجا سال پیششون فرموده نیم قرن بر ما مقدم محام شاگرد وقت بساب بیاین معنویم ولی به هر حال جامعیت هم نداره زمین که کلان نگاه نکرده و همه ازلا مرده هاجت مد نظر شریفشون نبوده از یک جامعیت برخوردار نیست هم ساختش، ساخت منطقی نیست هم جامعیت نداره اینکه ما همه شؤون رو شؤن فعلی رو گفتیم هیچ وقت نظامات تمام نمیشه. بگیم همین بیستاست دیگه. ما اجمالا هفت محور رو بردیم. زیل این چهار کلان محور در واخه. اما این 27 هفتا همین الان بحث کنیم شاید بشه 28 تا. شش دیگه کسی دیگه بیاد پیداشو بگه که سنحت تا هیچ اشکالی نداره. ما حسب واقعیت های خارجی نیازها که پیدا میشه نظام اونو بعد استنباط کنیم و به اray کنیم. اشکالی که نشکالی بچین ما میساج بدید. ساخت ایشون. در فخ نظام ساز منابع مادر فقه را دادن همون ثقلین فقط یا علاوه بر منابع دیگری مثل وجدان شما اینا ببینید منابع شریعت که تغییر نمیکنه. کوین اینکه اگر کسی مستدل و مستند بیاد امروز ادعا کنید یه منبع دیگی در معام استنباد می به کار بیاد و اثبات کنه شرعن منطقن معرفه بیان به لازم عرفت شناختی که این هم معرفت میکنه و معتبر شرعیه اگر اثبات کنه ما میپذیریم. اینجور نبوده که از اول عقل جوز منابه مسلم انگاشتشه تاریخ سی داره قضیه ورود عقل به فرایند اشتاعت با یه مصاحبه نمانی کردیم مفصل این بحث رو توضیح دادیم در مجله حوزه تهران میشه میگاد به مجله محفل اونجا در واقع پیشینهای معرفت شناختیه علم اصول رو کردیم توضیح دادم که فرایندی طی شده تا عقل الان با نسل ما عقل و کتاب و سنت رو موازی هم میدونیم اما چون چیزی نبود اولش حالا یه کسی بیاد ادعا کنه فلان مثلا انصار هم منبع هم مصدر دین شریعت اگر اثبات کرد ما میپذیریم ولی در حال حاضر این جور ممکنه نباشه حالا بندگی فطرت رو به مسابقه یک منبع عرض میکنن فطرت به مسابقه دال پنجون اون کتاب دار من تفهمیدین و از مفصلی فصلی کردم من که ما به فطرت هم باید اعتناد کنیم عدلش عرض کردم ممکنه ولی اجمالا منابع تغییر نمیکنه مهم جایگاه منابع فهم از منابع مهم اناصر دقیل فهمیدن به توجه داشتن به اناصر دقیق در فهم این منابع مهم اون است که اونا کمک میکنم ما منابع رو درست فهم کنیم مثل همین قصه که میگیم آقا باید ظروف زمان مکانی رو باید دیکته ما فرمودن زمان و مکان در اشتحاد نشافرینه. الان قایده است امام همین محسن بفرما. ایناست و لا بگی بگیم آلا مثل ک بعضی میگن این منابع کم زیاده از کنم من مخالف نیستم خود منم به عنوانی احتمال زیادی کردم ولیکن نه همینه اوتا مهم در روش شناسی کیفیت تولید قائد است. اصول رو میتونیم تغییر بدیم. نه حجیت کتاب و رو. اصول رو میتونیم تکمیل کنیم. اصول رو میتونیم توسعه بدیم. اصول رو میتونیم کارآمدتر کنیم. اصول رو میتونیم کنیم. این کارا رو میتونیم بکنیم. دانشگاهی استنباطی میتونیم توسعه بدیم، تعمیق ببخشیم، نوسازی سازی کنیم، عیاناً دقیق‌تر بکنیم، تضییق کنیم. اما منابع رو که دست ما نیست که چون اونا امر واقعی هستن خداوند خب تعال تشریف فرموده محمد تداو بعد منابع رو اصلا منو استفاده کنیم اما عمدتا این در روش شناسی هست آخرین سوالم رابطه فقه نظام ساخت با فقه تمدنی کلا مطرح هست و اومدن احواب فقه رو مال متناظرش رو در نظامات کونی مثلا باب و بهداش، باب بهداشت باب صلات و اینها رو نسبتشون رو چی میدونیم من حالا ممکنه دقیق فرمشات دوستانی رو, رو که تو این زمین ها کار کردنو رو بحث میکنن رو ندیده باشم و ندیدم احیانا ولی خب با دوستانی ما مرتبطیم و همکارانی داریم که تو این زمینه کار میکنن از ایک خیلی کنم از جنوال واسطی که همکار هستن در پجوشکا اجمالا در این حدود میدونم تصور من این است که ما در واقع در فقه ما فقط به نانیست تمدن سازی کنیم نباید بیاییم فقه رو فقط به یک قایت تعریف کنیم این یه جور محدود کردن موضوعی میشه اشکال نداره بگیم مثلا برایند فقه نظام ساز تولید تمدن خواهد بود بله برایند میشه تولید تمدن اما داریم راجعه به خود فقه بحث میکنیم خود فقه باید نظام تولید کنه، نظام بسازه، خود نظام داشته باشه، نظام اداره کنه، ولی ثمرش میتونه بعداً تولید یک تمدن باشه، به تولید یک تمدن منتهی بنده تمدن رو جوهر تمدن رو سبک زندگی میدونم. این یک سراب برداشت خاصی است از تمدن که حقیق دارم. و فقه بله، کارش تولید سبک زندگی است. یعنی سبک زندگی مؤمنانه رو فقه تولید می‌کنه. اگر سبک زندگی با همی عبادش تولید چه یک تمدن پدید آمده است در چه اون دوستان شاید نظر به انقایت و براین دارن میگن تمدن سازی یا تمدنی اما خب ما باید خود فقه رو اول بگیم فقط به تعریف نکنیم این شاید مثلا تفاوت قضیه باشه که در این تلقیب تعبیر ما ما متمرکزیم به خود امر فقه خود فقه رو بگیم چی وقت برایندش بله تمدن هم هست حالا البته یک کسی اگه بگیر مثلا علاوه تمدون مثلا تمدن شامل تعبد نمی شود مثلا اگر بگیر چون این نیست البته خب ممکنه براورده نشه اون بخصیم فقه تمدون ساز تمدونی ما وقتی در خود فقه متمرکز می شویم خب براینده مختلف داره خب قهران یکیش تمدن هست اما همین فقه علاوه که تمدن برای این دنیا مثل ا خب آخرت ما چه می شود؟ آخرت ما را فقر تأمین کنه شاید در کلمه تمدن دیگه نه نه افته که و آخرت ما چه می نسبتش به آخرت چیست؟ ممکن ممکنه محدود کنیم به یک مقول فقر و به نصاب قایت این قایت ها. نه هویت. قایت ها. اگر محدود کنیم شاید کامل نباشه شاید اینجوری باشه اتماعا. افعالكم الله و صلی اللہ محمد و محمد <سطنیزم> <تصفح> تنظیم نکردن بحث ما تموشد بیان حال این دیمیان عزیب فکر این آه... که مردی بود به این روشن ها تیشتاهاد نه همون بیتردشن این روشن ها کمایی زبایی روشن همون داریم که ما بوریشتر دیمیم الان اصلافی که بسیاریم خوش مردی خوش اون بزیار با مردیم اشاره همون نظرهییت که مردیم همون رو با در موزی شدیه شده که نیز ساز بخش بسیار روشنسی مشو الی ما